الحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله و بعد درمان با قرآن یه همون رقیه شرعی برای خودش آداب و احکامی دارد که ما اون آداب و احکام را به یاد بگیریم درمان با قرآن یک شغل یک حرفه نیست که یک شخصی برای خودش انتخاب بکنه و یا ملای خاصی شیخ خاصی معروف بشه به درمان با قرآن یک سری آداب و احکام هست همونطور که نماز، روزه و دیگر عبادت ها و تاعت ها برای خودشون آداب و احکامی دارن رقیه شرعیا برای خودش آدابی داره که انشالله ما سعی می‌کنیم که اون حدیث را اینجا یاد بکنیم رسول الله صلی الله علیه و آله خودشون درمان کردن و چگونه اصحاب خودش رضوان الله علیهم اجمعین را درمان می‌کردن بحث رقیه شرعی مهم قرآن آیاتی هست که در این بحث وارد شده که اون آیات تلاوت بشه مهم نیست که کی روی من قرآن می‌خونه خود قرآن شفاست به ذات خودش ما باید اعتقاد داشته باشیم به خود قرآن صلی الله علی محمد و علی محمد رویه شرعی برای خودش گفتیم آداب و احکامی داره خداوند در قرآن اشاره میکنند و میفرمایند و نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن قرانیکه فروف رساندیم خداوند میگه شفاء هست برای مؤمنین کسانی که بهش اعتقاد دارن نه برای کسانی که اهل فسق و فجور و اهل عصیان و اهل کفر و شرکن قرآن برای مؤمنینی که بهش اعتقاد دارن شفا بخشه و برای کفار و ظالمین و اهل فسق و فجور جز خسران و زیان چیزی دیگه سمره ای ندارد قرآن خودش به ذات خودش شفا بخشه نیاز نیست که ملایی عالمی شیخی بیاد روی ما قرآن بخونه و در احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد میکنن که اون افتاد از که وارد بهش میشن بدون حساب و کتاب یکی از خصوصیاتی که دارن در خاص رقیه از کسی نمیکنن ما در بحث روکششاری قبل از اینکه وارد بشیم با آدا و احکامش نیاز به تذکراتی هست که ما ان تذکرات را بدیم. اولین تذکر در این مسئله اینی که انسانی که پای بنده به از کار خودش از کار صبحگاه و شامگاه خودش از کار خواب خودش نمازهاش به وقت میخونه. این شخص شاید در معرض سهر و جادی واقع بشه ولی ما باید یقین داشته باشیم که اگر ما مواظب رفتارمون با خدا هستیم اگر هستیم دیگه اون درهای شیطان درهای چش زخم و حسادت بر ما بسته میشه و خداوند ما را در یک پناهگاهی پنه، پنه، نگه میداره که اون مسائل بهمون پیش نیاد و خداوند خودش در قرآن خودش وعده بر خودش گذاشته که ما را حفظ بکنه در صورتی که خدا را حفظ بکنه احفظ الله يحفظك چنانچه رسول خدا صلی الله و ابن عباس توصیه کردن اگر خدا را حفظ بکنیم خدا ما را هم حفظ میکنه خداوند در قرآن میفرماید ان عبادی لیسا لک علی سلطان این وعده خداونده بندگان من تسلطی بر آنها ندار این وعده‌ای ای که خداوند بر خودش گذاشته و به ابلیس گفته نمیتونه تسلطی بر بندگان حتی اگر انسان مؤمن تلس جادو بشه چنانچه رسول هستان هم تلسم شدن انسان میتونه راحت خودش رو درمان بکنه جای ترس و واهمه نیست و یک مسئله دیگری که حال دیگر در این مسئله دومی اینه که چرا ما در زمان صحاب مثلا بکر و عمر و عثمان و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله می‌بینیم چرا اونها نمی‌نالیدن از اینکه ما چش خوردیم بختمون بسته شده بخت دخترمون بسته شده چرا به خاطر قوت ایمانشون قوت اعتقادشون به قرآن خیلی مهمه ما پایبند باشیم قبل از اینکه ما وارد رقیه شرعی بشیم ما باید خودمون رو پایبند به دین بکنیم و بعد بریم خودمون را با قرآن درمان بکنیم ما گفتیم که بحث تذکرات می میتذکره که اینجا با داده بشه در بحث رقیه شرعی اینه که نمیشه ما خودمون رو با قرآن را دیزب بذاریم یا فلش بذاریم توی کامپیتر یا موبایل رو بذاریم کنار خودمون و خودمون رو با اون قاریی که میخونه خودمون در ما مکنه خیر قرآن نیاز به نیت داره قرآن نیاز به دمیدن داره همون تک رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رقیه شرعی روی خودشون انجام میدادن کف دست خودشون رو میگرفتن و روی کف دست خودشون میدمیدن بعد از اینکه قرآن میخوندن و به بدن خودشون میگاشن این راه شرعی رقیه شرعی نه اینکه رادیو ضبطی موبایل یا کنار تلویزیون بشینیم و بعد خودمون درمان بکنیم و درهای شیطان رو به خودمون باز بکنیم خیلی ها نشستن کنار تلویزیون شیطان اومده وسوسهشون کرده عرق از اومده دستاشون خرد شده فلان شده و در نتیجه گفتن که ماحال ما روز بروز بدتر شده و رو وردن به جادوگر و دیگر مشاوزین از جمله تذکرات در بحث روخی شرعی این که بعضی ها آتشی را میارن زغالی را میارن یک سری بخوری روش میریزن همون حالا معروف در جنوب ایران به اسم زار بازی زار اشخاص جمع میشن دهولی تبلی میزنن این راه درمان خودمون با, قو با قول معروف اون کارهای شیطانی نیست این کارها خلاف شرعه آتش وسیله برای درمان نیست. قرآن خودش ما گفتیم به ذات خودش شفاست. و بعضی از مله‌ها هستن که روی آب می‌خونن، روی نمیدونم بشکه آب میخونن یا روی روغن می‌خونن. این کار از رسول الله صلی الله علیه و ثابت نیست و اون چیزی که در بعضی از روایت‌ها اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم روی صحابی ثابت ابن قیس خوندن، اون روایت ضعیفه. بله از آیش ام المؤمنین هست که وارد شده که تجویز کرده روی آب خوندن بله برای بعضی از حالات ها اون کسی که مثلا جادو بخوردش دادن میشه تجویز کنه روی آب بخونه و اندازه مقدار یک لیوان که بخوره و خودش رو درمان بکنه از آداب شرعی که در بحث روخیه شرعی اومده ما گفتیم نیت قرائت دمیدن نمیشه که ما از پشت میکروفونی بلندگویی یا از پشت تلفنی کسی رو روخیه بکنیم این خیلی مهمه که مثلا شخصی مثلا بیاد به ما بگه که ما می‌خوایم مثلا با تماس تلفنی فلان شخص رو رقیه بکنی خیر نمیشه باید شخص حضوری باشه و این کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روی خودش و روی مریضان انجام میدادن اون کار روی اون فرد انجام بشه تا اینکه اون درمان شرعی ما بگیم حاصل شده از جمله تذکراتی که باید داده بشه در بحث رقیه شرعی اینی که بعضی ها مثلا بالفرز از یک عدوات خاصی استفاده می مثل مثلا نمک یا مثلا آب دریا یا مثلا نمی پوست ببر یا پوست مار یا پوست گرب روی اونو قرآن می به بدن مریض می اینها هیچ دلیلی از شهر نداره بلکه از جمله تماعیمی هست که شهر من کرده بعضی ها در حین مثلا بالفرز وقتی که از محاسن یک یاد میشه مثلا میگن به چوب بزن به تخته بزن نمیدونم نمیده خورده شیشه و از این جور مسائل یاد میکنن از این خرافات هایی که هیچ اساسی نداره مثل اون خرافات هایی که مشهوره در جامعه خودمون شب چهارشن مثلا ناخ نچین فلام میشی اینها هیچ اساسی نداره در شهر اینها جز خرافاتی یعنی هم که ما رو من کرده از اعتقاد به اینها رسول الله صلی الله علیه وصلا میفرماند اینتم ای باتی وت شرک تمائم اون چیزی که از باب اتمام و کمال استفاده میشه چه میخواد است سخن باشه چی میخواد تاره کمان باشه هر ابزاری آب دریا هست مثلا بعضی ها به دم خونشون آویز می اینا همه خلاف شرعه و حرامه که شخص استفاده بکنه جوز شرکیات. اون چیزی که از قرآن بهمون خدا یاد داده اینه که خود قرآن شفاست نه اون ابزار دیگری که ما از خودمون در وردیم و من در وردیه الحمدلله و السلام علی رسول الله و بعد از جمله تذکرات در بحث رقیه شرعی به زن نامحرم زدنه بعضی از مullahها متاسفانه مثلا یا با دستکشی یا حتی مستقیم دست به دست نامحرم میزنن رسول الله صلی الله علیه و سلام اگر با میخی آهنین بر سر شما بکوبن بهتر از اینی که دست به نامحرم بزنه درست نیست که اون مullah دست به اون زن بزنه و یا اینکه با اون زن خلوت بکنه درستی زن به تنهایی بره پیش اون مullah رسول الله صلی الله علیه و سلام الله یک مرد نیست که با زن خلوت بکنه مگر اینکه سومیشون شیطان هست ما باید بر باشیم از این کارها از این چیزهایی که خلاف شرعه و شر به ما زد کرده و هشدار داده از جمله تذکراتی که ما باید بدیم در بحث رقیه شرعی بحث اینکه مثلا بلفظ یک بچه را میارن بچه چشمشو ببنده مریض چشمشو ببنده تخیل بکنه تا را به خیال خودت فلانی بیار فلانی بیار یا اون بچه میگه من گربه میبینم گربه سیاهی بعضی ها هم متاسفانه قرآن را بازیچه این قرار دادن که طرف مثلا میان مثلا میگه چشمتو ببند تو رو به بهش بیبرم فلان میکنم این کار میکنم این چیزهایی که برای اصحابه روخ نداده شخص میاد میگه که خب نه این چیز برام روخ داده شادم بده شای حریصان حسن بر کسانی که پایبند به دین نیستن این تخیلا براشون ایجاد بکنن بعضی ها بوده که مثلا سوره جن رو مثلا 40 بار خوندن یه خودش خودشو وسط کوچه و خیابون دیده این کارها خلاف شرعه و ما های شیطان رو با این خرافات ها برای خودمون باز کردیم نه اینکه قرآن ما رو بیرون آورد خیر شیاطین ما رو بیرون آوردن با توجه به اون خرافات ما با اون اعتقاد نادرست نادرست و نشوای است بحث اینکه ما خودمون را با گلاب یا زعفران درمان بکنیم قرآن رو مثلا با زعفران روی یک برگه بنویسیم یا روی لبه کاسه یا دور برای یک کاسه بنویسیم و بعد بعد از اون با آبی مثلا بشوریم و از اون آب بخوریم و خودمون در خیر این وسی... این چنین وسیله ما در شهر نداریم و خداوند و پیغمبرش صلی الله علیه و به ما دستور ندادن که این چنین کاری رو ما, ما انجام بدیم اینها خلاف شرعه قرآن باید خونده بشه تلاوت بشه قران در تلاوتش شفا هست همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با صحابه عم میکردن که بر رسول عرضه بکنن اون رقیه شرعی که ازش استفاده می اعرض و علیه رقاطم بر من عرضه بکنین پس مهمه که شرع تایید بکنه اون رقیه شرعی اگر مله دیدید که زمزمه میکنه زبانی یه چیزی میخونه الا چه به اسم قرآن چه به اسم استخاره بدونه که کاسه زیرین میگسد فریبه این اورادها نخونید فریب اون عمامه ای که بر سر گذاشته نخورید از جمله هوشیار حوا تذکرات در بحث رقیه شرعی بحث تکرار اوراد و ادعیه هایی هست که در شهر وارد شده حالا بعضیا از یک گوشه یک آیه ی حدیثی میگیرن و از گوشه دیگه یک حدیث دیگه رو با هم دیگه قاطی میکنن و به اون مریض میگن که بخون حالا چه در حین رقیه شرعی و چه خودش مثلا یک وقتی بهش میگن قبل از نماز بعد از نماز 100 بار 200 بار اون ذکر را بگو یا اون ورد رو بگو ما خودمون رو به اون چیزی که در شهر نیومده در قران و سنت صحیح و ثابت نیومده خودمو پایبند نکنیم فدی نمیدونن 8 گنجو نمیدونن 50 گنجو 40 گنجو نمیدونن از این چیزهای خصوصن از پاکستانو از این از این جهامیات که هیچ اساسی هم نداره در شهر فریب اونها نخوریم و به اونها عمل نکنیم اون چیزی که هست از کتابهایی که مشهور معروفه و حدیثش صحیحه مثل کتاب قناغای مسلمان به اونها عمل بکنیم نه اینکه ما خودمون بازیچه دست ملاها قرار بدیم و هر چی بهمون گفتن بپذاریم و قبول بکنیم بعضی از کتابها به علائم چشخ محسادت و جادو میپردازن یک شخص در خودش میبینه میگه من شب تبم میاد شب نبیدنم عرق میکنم و اینا پیشینیم که نام میشه یا در حینی که قرام میخونم نبیدم خوابم میگیره خمیازه میکشم فریب اینها را نخوریم شیطان ما رو وسپسه نکنه وelfers ما تلس شده باشیم جادو شده باشیم چش خورده باشیم کسی حسادتمون کرده درمانش خیلی راحته اینی که ما همونطور که رسول الله صلی الله علیه سلام از جادو خودشون رو رقیه کردن رو کف دست خودشون خوندن ما اون کارو انجام بدیم دیگه اینکه جادو کجا گذاشته شده کی ما رو جادو کرده این دیگه نیاز, نیاز نیست که ما جسجو بکنیم و پیگیریش باشیم بعضی از جادوگرا هستن شاد بیان تو خونه برامون تعویذی دعای چیزی جادویی از اون تلس تلسما هم بیرون بیارن و ما رو ببرن قبرستون اون جادو رو بیرون بیارن غریب اینا رو نخوریم قرآن نیازی نداره که ما اون جادو رو باز بکنیم یا آتش بدیم این راه حل نیست راه حل در درمان فقط قرآنه بعض از مله ها وقتی که شخص میره پیششون مجردی که مله به اون شخص میبینه یا بعد از که یک ای زیر زیرزبونی میخونه به طرف میگه تو بختت بسته شده تو رزقوت بسته شده فلان شخص چشم زده یا فلان شخص جادو کرده آیا اون شخص از غیب با خبر مطلعه آیا با خداوند در رابطه هست پیامبر برش وحی میشه یا اینکه نه جنیان هستن که برش وحی میکنن خداوند در قرآن ثابت میکنه که جنیان بر انسان وحی میکنن و این الشیاطین لا ایل الی اولیاءهم شیطانان بر ما ها وحی میکنن وقتی که ما خودمون را بازیچه دست شیاطین قرار بدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من اتکاهنا و عرافا فقط کفر به منزله محمد صلی الله علیه وسلم سلام سختی از ازر سودا از صلی الله علیه و به اینکه که رفتن پیش این اشخاص کفر بر محمد صلی الله علیه وسلم به بمجرد اینکه بریم تصدیقشون بکنیم در بعضی روایت اومده که چه روز نماز اون شخص رو نیست خودمون رو بازیچه دست این جادوگران قرار ندیم بحث این که الان بلفرز, بلفرز ما مثلا در منزل خودمون یک جادوی پیدا کردیم راهلشیه حلش خیلی راحت اون جادو رو برمیداریم یا اون اوراقی که نوشته شده روی اون تماعیمی که رسول الله میگه از شرکیاته روی اون قل هو الله احد قل هو رب الناس بعد با آتش میزنه شاید مثلا یک شخص شبهه داشته باشه بگه خب شاید آیات قرآنی چیزی تو این نوشته باشه آیا ما میدونیم که این آیه قرآن با نجاست نوشته شده یا نه چون جادوگران اون آیات قرآن رو با نجاست می تا اینکه موکلی از جن مسخر اون شخص اون طرف بشه ما نمیدونیم با نجاست با ادرار نوشته شده با مدفوع نوشته شده با چی نوشته شده به خاطر همین ما برای اینکه خودمون رو در امان از موکلین جن قرار بدیم مجبوریم که اون جادو رو آتش بدیم نه اینکه بعضیا میان تو دریا میندازن که اون جادو به حال خودش باقی بمونه هرچند که بلفرض اگر باقی بمونه با خوندن روی خودمون اون ارتباط بین موکل و شخص از بین میره یکی از راهکارها در بحث رقیه شرعی از کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون یاد دادن و مهمه ما انجام بدیم قبل از اینکه بریم پیش دکتری پیش تبیبی بریم که ما رو معالجه بکنه قبل از اون با کار خیلی راحت خودمون رقیه شرعی بکنیم دست خودمون رو اونجایی که درد میکنه بذاریم به همون که رسول الله بهمون یاد دادن بگیم بسم الله بسم الله بسم الله صبر بسم الله بگیم و بعد از اون بگیم اعوذ بعزه الله و من شر ما اجد به عزت خدا و قدرت خدامن پناه میبرن از هر درد و هر مریزی که هست ما با این ذکر با تکرار کردن هفت بار خودموند اگر نیاز بودم بیشتر از هفت بار تکرار میکنیم این یکی از راه، راهکارها هست برای درمان و برای معالجه خودمون قرآن شفاست قرآن شفا برای بدن و روح همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که در مقابل دردی که ازش مینالیم دست بذاریم و خودمون رو رقیه بکنیم با اون ذکری که وارد شده روح هم نیاز به رقیه داره ما باید روح خودمون رو هم رقیه بکنیم و کسی جز خداوند از روح مطلع نیست نمیدانه همونطور که خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن میفرمایند و یسالونک عن روح قل روح من امر ربی. روح فقط از عمره پروردگاره که خداوند فقط از ماهیتش، کیفیتش و راه درمانش میدونه و فقط قرآن که درمانش میده ما اگر پیش پزشک بریم شاید تشخیص بده که مشکل جسمی مون چیه ولی مشکل روحی مون اینکه دو چهار شدیم، حسادت شدیم یا جادو شدیم اون پزشک نمیتونه تشخیص بده خب الان راهکار چیه چجوری ما تشخیص بدیم که رو... قل معروف ما جادو شدیم که بعد خودمون رو مثلا رقیه شرعی بکنیم حالا این راهکارهاش ان شاء الله توضیح خواهیم داد در بحث رقیه شرعی یک از علایمی که مثلا ما داریم در بحث اون مریضی که روش قرآن میخونیم مثلا بفرض وقتی که قرآن شخص رو خودش میخونه مثلا قش میکنه حال خودش نمیتونه خودش بخونه به خاطر اون مشکل جن زدگی و خودش هم میدونه که این مشکل داره راهکار اینه که شخصی که روش قرآن میخونه فقط به قرآن ادامه بده و قرآن روش بخونه علاوه هر که جنم صحبت بکنه بعضی از متاسفانه بعضی از هستن و کسانی که رقیه میکنن از مله ها با جن صحبت میکنن شما چند نفرید کجا هستید شهادتین بگید وارد اسلام بشید و از این حرفا که لازم نیست چون ما اصل در این داریم که جن جز دروغ چیزی که بهمون به نمیگه شاید راست بگن ولی یک در هزارم و نباید فریب اونها بخوریم و نباید هم با اونها صحبت بکنیم اینکه یک جن دو جن سه جن در بدن ما از کجا میدونیم این کی بهمون به خبر داره یا میگه طرف من مسلمان شدم از کجا میدونن که مسلمان شده یا نه فریب حرفشون نخوریم و باهاشون صحبت نکنیم ما فقط بواد ما رو انجام بدیم همونطور که گفتیم شاید مثلا جنی صحبت بکنه در بحث جن‌زدگی یا مثلا یه تلسما خاصی که مثلا انجام شده ما مثلا علائم داریم مثلا برای چش زخم یا مثلا طرف مثلا وقتی قرآن روش میخونیم مثلا دستاش سنگی میشه مرمور میشه ولی خب همیشه اینطوری نیست شاید جای مثلا شیطان وسوسه بکنه ما نباید خودمون تلقین بکنین بگیم که نه حتما اینطوری حتما یه چیزی هست ما نباید مجال بدیم شاید هم جن صحبت بکنیم. بسیاری از متأسفانی از ملله مله‌ها هستن که مثلا مریضا در حین رقیه کردن کتک می زنند. این کار درستی نیست، ناشایسته. رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله چنین کاری انجام دادند. درست نیست مریض و کوتک بزنیم. درست نیست با اون جن صحبت بکنیم. بلکه ما باید رقیه شرعی، قرآن رو برش بخونیم. مریض هم نباید خسته بکنیم و خود اون شخص هم می‌خواد خودش رو رقیه بکنه، نباید خودش رو خسته بکنه. بله، خونه‌ای درش جنی هست، اونجا سوره بقره خونده میشه. ولی لازم نیست که سوره بقره رو کامل شخص روی خودش بخونه. ما گفتیم مریض نبات خودش رو خسته بکنه بلکه اون سوره هایی که اومده مثلا سوره فاتحه هفت بار خوندن و یا اون سه تا قل خوندن سه بار تا هفت بار تا بار نه اینکه انقدر خودش رو خسته بکنه مریض اول خودش رو خودش بخونه نه کسی دیگه روش بخونه حالا اون شخصی که جن است یا اون شخصی که چش چش خورده و مورد حسادت واقع شده حالت سوم بحث تلسیم و جادو هست به خوردش دادن یا ناخونی مثلا ازش گرفتن یا پیراهنشون تلسیمشون جادوشون کردن راهکار چیه راهکار اینه که همون هم به همون روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلام خودشو درمان کردن خودشو درمان بکنه از کجا بفهمه که جادو شده قرآن وقتی که روی خودش میخونه حالا تهوع بهش دست میده استفراغ میکنه اون تو اون استفراغش مو هست شاید سوزن باشه شاید ورقه باشه شاید چیزای سیاه رنگی از گلوش خارج بشه نباید اونها توجهی داشته باشه و نه هم دنبال این بگرده کی و کجا تلس شده پس ما الان سه تا علامت کلی داشتیم که در حین رقیه یا در خودمون میبینیم یا در اون مریضی که مثلا اون مادری که مثلا بچه خودش یا شوهر خودش را رقیه می‌کنه مثلا در اون طرف میبینه سه تا علامت کلی یا جنز... یا صحبت کردن جنه یا استفرا کردن یا سنگی شدن و ممر شدن قسمتی از بدنه یا گرم شدن بدن اینا علامت چش سف موهسادته راهکارش چجوری خودمون درمان کنیم حدیث ابو سعید خدری داری داریم که یک جای... جای رد می‌شدن و ازشون پذیرایی نمیشه به عنوان یک مهمون بعد اون ریئیس قبیله مریض میشه ماری او را میگزه یا یک موجودی او رو میگزه تبدار میشه و تقاضا میکنن که او را درمان بکنن ابو س خودیم میگه یکی از ما رفت که گفت که اگر بهمون اینقدر از بزا میرید ما حاضریم که او را رقیه بکنیم و او را درمان بکنیم بعد میگه که یکی از ما رفت و هفت صورت ای خوند و اون شخص دوباره زنده شد دوباره روی پای خودش ایستاد این یکی از راه راهکارهایی که ابو سعید خدری به همون یاد داد ما گفتیم اون شخصی که مریض شده بود یک موجودی با اون سمی که داشته او را میزنه و تبدار میشه و بعد روش سوره فاتحه میخونن در اونجا یک ماجره پیش که اومد اونم این بود که چون آب و غذا همراهشون نبود پذیرایی نکرده بودن تقاضای اون آب و غذا کردن این کار رسول الله صلی الله علیه و سلام تایید میکنه اون مالی که برمیدارن و رسول الله میگه سهم منم بدید یعنی تایید بر این کاره یک شخصی از خودش مثلا به اون مولایی اون شیخی اون راقی چیزی بده مشکلی نیست از لحاظ ولی این بدونیم وقتی که مولای نرخی تعیین میکنه یا برای خودش مثلا پول میگیره قبل از خوندن بدونیم که کاسه زینی می کاسه هست و فریب این تخمینات اونها به اون حرفهاشون نخوریم و خصوصا من تذکر میدم اون ملایی که اسم مادر طرف میپرسه که اسم مادرت چیه اسم مادرت رو بگو بدون بدون شک این شخص جادوگر و عراف و کاهنه که ما باید ازش برحذر باشیم حدیث ابو سعید خدری داشتیم سوره فاتحه از جمله حدیثی که ما داریم حدیث ام المؤمنین عایشه حس رضی الله عنها که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که جادو شدنا و تو خونه افتادن نمیتونستم بلند بشن من می اومدم مدام را می میخونم رو کف دست رسول الله صلی الله علیه و و بر بدن ایشان میکشیدم چون رسول الله صلی الله علیه و این کارو با ما با همسرانش انجام میداد این قریه که از ما مریض میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم روی کف دست خودشون میخون و بدنه آنها میکشید بله چون زنش همسرشه انسان میتونه این کار رو با چشش انجام بده و خود اینکه رسول الله صلی الله علیه و در حدیث داریم که حسن و حسین داد فرزند خودش رو رقیه میکردن و میگفتن اعوذ بکما بكلمات الله التامه من كل شيطان و من, من كل عین لام این اونها رو رقیه میکردن و میگفتن این رقیه هست که ابراهیم به اسحاق اسماعیل رقیه میکردن شما را پناه میدم به خداوند از هر چیز زخمی و هر جنی تذکری که ما گفتیم که رسول صلی و حسن و حسین رضی الله عنهما رو رقیه میکردن اعوذ بکما بكلمات الله التامه شما را پناه میدم به کلمات خداوند و اونم قرآن از هر شیطانی و هر موجودی که سم داره من کل شیطان و همه یعنی هر شیطانی و هر مخلوق موجودی که سم داره و من کل عین اللمه و هر و, و اون چشم زخمی که تاثیر داره اون چشم بد شما رو پناه میدم به قرآن خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم روی اونها اون ستاقور رو میخونن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شده که نماز میخون و عقرب میاد به رسول الله صلی نیش میزنه و در رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آب و نمک بیارید بلکه آب و نمک میارن رسول الله صلی الله علیه و سلم روی خودش روی اون قسمتی که زخمی بود میخونن قلالات کافرون و معوذت قل هو قل اعوذ بر الفلق و اعوذ بر رب الناس رو میخونن و به اون جا میکشن این یکی از راهکارهای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون یاد داده رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که همسران خودش مثلا میخواستن رقیه بکنن چنان چه میگن اشراجه الله میگه یادت می اومدن و دستی بر سر اونها میکشیدن و میگفتن اللهم رب الناس ای پروردگار مردان اذهب الباس اون مریضی رو شفا بده و اشف انت الشافي شفا بده پروردگار را که تو فقط شفا بخشی لا شفاء الا شفاءک شفای جو شفای تو نیست شفاء الا یغادر سقما شفای که رد خورد نداره پروردگار را شفا بده این دعا کسی نمیتونه این دعا را بگه کسی این این ذکر را با این لفظ بلد نیست هرچند که بهتره که انسان اینو حفظ بکنه به معنای خودش بحث دعاست بحث اینی که خداوند در قرآن میگه ادعونی از سجب لکم، شما دعا کنید من استجابت میکنم اون مریض دست بر سر پای او را شفا بده این تورو این درخواست از خداوند خیلی مهمه که قبل از اون که این که قرآن بخونیم بر مریض دست به دعا برداریم و از خداوند تقاضا بکنیم و بتلبیم که اون مریض را شفا بده ما از جمله احادیثی که داریم حدیث ابوسعيد خودری هست ما دو تا حدیث عائشه داشتیم دو تا حدیث ابوسعيد داریم یکی اونجا در بحث فاتحه بود اینجا هم در بحث رقیه جبرئیل که رسوله وقتی که تلسمون جادو شدن جبرائیل اومدن بر سر رسول الله صلی الله علیه و این چنین دعا کردن بسم الله يا ارقی با اسم خداون ابتدا با اسم و توسل استعانت بخداون به اسم الله ترا رقیع میکنم. من كل شئی نیوذی که از هر چیزی که ترا ازیاد اذیت میکنه شر کل نفس از هر نفسی از جن و انس از بخواد جادوگر باشه بخواد جنی باشه تو را تعویذ میدم به خداوند ترا را پناه میدم به خداوند او عین حاسد و از هر چش زخمی الله یشفیک خدا تو را شفا بده از اونها بسم الله ارقیق دوباره تکرار می بسم الله ارقیق این مهمه قبل از اینکه ما خودمون رقیه شرعی بکنیم این ذکری که جبرئیل یاد کردن ما این ذکر را بگیم پس ما الان سه تا ذکر گفتیم میتونیم این از کار را با هم بخونیم قبل از اینکه خودمون بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که جبرئیل اومدن بر این را خوندن و جبرئیل هم خبر داد که رسول الله صلی الله علیه و کجا جدو شده زیر فلان صخره و فلان چاه و در فلان جا ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلام که خودشون تحقیق بون هرچن خبر دادن رسول الله صلی الله علیه و درمان را به من گفتن گفتن که الان که من جادو شدهم درمانی بر من نازل شده درمان چیه سه قول کسی نیست که ستاقر را بخونه مگر اینکه اون جادو باطل بشه دیگه لازم نیست که ما پی ببریم کی ما رو جادو کرده و کجا ما رو جادو کرده سوءزن نداشته باشیم مله‌ها جز این که اون جادوگرا که به اسم ملایی میان به قول برای خود مغازه باز کردن که سوءزن بسازن و خانواده ها تو جون همدیگه بندازن گول و فریب و اونها رو نخوریم رسول الله صلی الله علیه و آله راهکار و روش درمار رو یاد دادن اینکه رسول الله صلی الله علیه و گفتن سوره های به من نازل شده که شفا ما هم سه انسان سه تا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل برکف دست خودش بخونه و بدنه بدنش بکشه این روح شفابخشیه از ما در این اسکاری که گفته شد مهمه که ما اون سیاق رو درست بگیم مثلا بفرض اگر مثلا ما میخوام همون ذکر همون تو که رسول الله صلی الله علیه و گفتن چون اینجا جبرئیل بسم الله ارقیک گفتن به رسول الله صلی الله علیه و شاید زن باشه بسم الله ارقیکی ما بگیم با کسر چون خطاب زن فرق میکنه به فرق میکنه در لغت عربی اونجا مثلا در حسن و حسین رضی الله عنهم آدرسیم اویدو کم آشات مثلا یک شخص باشه اویدو که اگر دختر اویدو کی یا میخواد خود شخص خودش رو رقیه بکنه الله من یا اویدو که با که تام خودم و با این کلمات تاماتت شخص میخواد خودش یا بسم الله ارقي نفسی خودم و بربر رو میکنه این مهمه که انسان روش دقت بکنه اون دعایی که میکنه درست دعا بکنه و بعد از اینکه دعا میکنه این سوره ها رو بر خودش میکنه حالا سوالی که ایجاد میشه کی چه موقع و چطور خودم رقیه بکنم اینا ان الله پاسخ خواهیم داد بحث اینکه ما چه موقع و چه وقت خودمون رقیه بکنیم ما هر وقت میتونیم خودم رقیه بکنیم خصوصا اون وقتایی که استجابت دعاست مثل بین اذان و اقامه یا یک سوم آخر شب هر وقت ما تونستیم خودمون رو میتونیم رقیه بکنیم رقیه شرعی بکنیم الا مثلا ما میگیم شخص خودش رو بکنه به قبل از نماز یا بعد از نماز فقط برای بحث موازبت هفت بار سوره فاتحه رو, رو کف دست خودش بخونه با نیت هر بار که فاتحه خون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلالله با صدای بلند خوندن مهمه تلاوت بکنه سوره فاتحه و بخونه و بعد فوت بکنه رو کف دست خودش زبان رو نفس بکنه زبان رو دندونش قرار بده و فوت بکنه و بعد بکشه به بدن خودش هفت بار این کار تکراب گنی. هر بار فاتحه که خون ستا قول با هم که خون بسم الله الرحمن الرحیم قوله الله حد قل از فرق قوله از ناس تلاوت بکنه ستا که خون میدمه و به بدن خوش بین سه بار تا هفت بار این کار رو انجام بده دیگه دنبال این نباشه که نمیدم دستم سنگی شد یا نشد خارج از بحث رقیه شرعی بحث آداب احکام رقیه یه طرف بحث پیشگیری از اون چشتخ محسادت و نمیدونم دونم و جادو یه قسمتش برمی گرده مثلا بحث چشتخ محسادت رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه می برای برای کسی دچار چش زخ نشه این آسیب رو نبینه رسول صلی اللہ علیه وسلم به ما دستور دادن واجب بر اون شخص که میدونه چشم شوره بگه اللهم بارک یا بگه بارک الله یا بگه خدا برکت توش بندازه نمیتونه به فارسیش بگه به, به عربیش بگه به فارسیش بگه چنانچه رسول صلی اللہ علیه وسلم به ما امر کردن فلیوبره تبریک بگید بگید خدا برکت بندازه توش هرچند که بعضی از علما هم اجازه دادن مثل شیخ بن باز رحمه الله که بگه ماشاءالله چنانچه در سوریه الکهف داریم ماشاءالله گفتن ولی مهمتر از همه اون چیزی که رسول الله بهمون یاد داده بگه خدا برکت بندازه توش چرا چون رسول الله صلی اللہ علیه و سلم به ما هشدار دادن از چه زخم و بیشترین چیزی که این امت رو وارد قبل میکنه چه چیز زخمه بحث پیشگیری هست بحث درمان اعتماد به خداوند مهمه به خداوند مهمه امه توکل, مهم. توکل علی الله فهو حسبه اليس الله بكاف عبدا خدا برای بنده کافی نیست خدا برای بنده کافیه فری به مله ها رو نخوریم نه رو ببریم نه بوس رو ببریم اونها ذبح میکنن به غیر خدا ذبح به غیر خدا شرک با اون شرک جنیان بر ما مسخر میشن شاید اون کار ما را راه بندازن ولی بدونیم اگر با اون با این گناه ها از دنیا رفتیم خالد مخلد در جهنمیم رفیق ابو جهلیم در پسترین ترین جای جهنم اگر این کارها رو کردیم رفیق اونها نباشیم باشیم ما رو نجات بدیم و خودمون رو بازیچه یه دست این ملوها قرار ندیم به خدا اعتماد داشته باشیم این از را بخونیم پایبند باشیم خصوصا از نماز نمازهای سنت از صبحگاه شامگاه از خواب و این رقیه شرعی را انجام بدیم دیگه ترس و واهمه از خودمون برداریم